خون او نسیم معنبر شمامه‌ی دلخا که در هوای تو برخواست وام داد تگا دلیر راه شو ای تایر خجست لقا که دید آگ شد از شوق خاک آن درگاه به یاد شخص نزارم که غرق خون دلح حلال راز کنار افق کنید نگاه منم که بی تو نفس میکشم کشم زهی خجلت مگر تو عفت کنی ور نچیست عذر گناه ز دوستان تو آموخت در طریقت میر سپید دم که سبا چار زد چار سیاه ز دوستان تا موخ در طریقت مهر سفید دم که سبا چاک زد شعار سیاه به عشق روی تو روزی که از جهان بروم ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه مده به خاطر نازک ملالت از من زود که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله